بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ سورة مباركية محمد هست صلى الله عليه وسلم نام دیگر ان سورة قطال هست، سورة جهاد هست این سوره از سوره های مدنی هست که بعد از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه این سوره نازل شد ابتداعا مناسبت این سوره را با سوره گذشته ارز می کنم در سوره احقاف مشخص شد و قبل از احقاف که همه سوره های حوامین بودند که معبودانی که مشرکان انها را فریاد میزنند از اونها استمداد می طلبند. کمک می خواهند انها لایق معبودیت ندارند لیاغت معبودیت را ندارند ارزشش را ندارند نه مالک چیزی هستند، نه مختارند نه متصرفند نه نم فریاد کسی را میشنوند، نه میتوانند اجابت کنند اینها را با دلائل خاندیم، مسئله توحید گویا با دلائل اثبات شد حال در سوره محمد میفرماید که مرد و قوی باشید و بخاطر مسئله توحید و بخاطر اعلاء کلمت الله با دشمنان خدا با دشمنان توحید با کسانی که با توحید مبارزه می کنند با آنها بجنگید جهاد کنید فاذا لقيتم الذين كفروا فالضرب الرقاب کفاری که فعالیت کفر می کنند شرک می کنند و با توحید مخالفت میکنند شما وقتی که در میدان کارزار با اونها روبرو شدید گردنشون را بزنید پس موضوع اصلی این سوره جهاد هست اما خلاصه سوره را عرض بکنم این سوره بر دو بخش تقسیم شده یکی از اول سوره تا دروك بعد والله يعلم متقلبكم ومثواكم ودوفم بعد اسون ويقول الذين امنوا تا آخر السوره در بخش اول سوره در قسمة اول سوره تقابل هست تقابل صفات مؤمنين ومشركين مقايسه صفات اهل ایمان واهل الشرك که انسان ایمانداران را با صفاتش میشناسد مشرکان را هم با صفاتش میشناسد هم تقابل صفات هست و هم جزای هر دو هست پاداش هر دو هست و همچنین حکم جهاد و ترغیب الى الجهاد در همین بخش اول سوره ذکر شده و مقصود اصلی که توحید هست فرموده که به خاطر توحید شما جهاد کنید در بخش دوم سوره زجر بر منافقان هست زجر بر کسانی که اونها همیشه مزاحمت میکردند در موضوع جهاد در موضوع تبلیغ دین در جهاد شرکت نمیکردند نه مال را صرف میکردند نه خودشون شرکت میکردند و مزاحمت میکردند و در پایان مجدد احوال مشرکین بیان میشه این سوره که نامگذاری شده به نام نامی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چون در یک بخش این سوره یک آیه این سوره ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده الله تعالی ذکر پیامبرش را به نام در 4 قرآن ذکر فرموده در چار جا ذکر محمد صلی الله علیه و سلم آمده و بیشتر به عنوان صفت ذکر شده به عنوان نبی ذکر شده رسول ذکر شده رحمت للعالمین ذکر شده اوصاف دیگری برای رسول الله بیان شده و به نام فقط چهار جا ذکر شده هر جا هم یک نکته یک هدفی و یک مقصدی مد نظر بوده که اون را عرض میکنم. خب یکی از آن چارجا این سوره هست که می خانیم و دیگه سوره حجرات هست که اونجا شما انشاءالله می خانید محمد رسول الله والذین معه اشده علی الكفار خدا تعالی آغاز می فرماید با بیان صفات صفات مشرکان و صفات مؤمنان و تقابل صفات هست خداوند میفرماد: آلذین کفر و صد عن سبیل الله، اضلا أعمالهم. این بیان حال مشرکین است. علاوه از اینکه این بیان حال مشرکان هست،, هست دلیل جهاد هم همین صفات است. چرا خداوند دستور داده که با مشرکان جهاد بشه به دلیل همین صفاتی که مشرکان دارن؟ آلذین کفر و صد عن سبیل الله. آنهای که کفر کردند و باز داشتند از راه خدا باز داشتند یا باز آمدند هر دو معنی اینجا درست هم معنی لازم بعضی معنی لازم کردند باز بعض آمدند بعضی معنی متعدی کردند دیگران را باز داشتند کفر کردند و دیگران را باز داشتند از راه خدا اضل اعمالهم اعمال نیکی اونها تباه و برباد میشه ببینید اعمال چیزی هست که خداوند در فطرت هر انسان در فطرت هر انسان و وجود هر انسان کار خیر را گذاشته چه این انسان کافر باشد و چه این انسان مؤمن باشد در وجودش یک حس معروف هست دوست دارد که خیر بکند کار خوب بکند به همین خاطر گاهی مشکلی پیش می آید در نکته ای از نکته های دنیا شما می بینید که تنها این مسلمانان نیستند که دلشون می سوزد و بیاری مردم اون منطقه می شتابند همه انسانها چون این حس خیر را و این کار خوب را کارهای نیک را خداوند تعالی در فطرت بشریت گذاشته در فطرت همه خداوند هم کار خیر گذاشته هم در فطرت همه دین را گذاشته که بعدا کفار به وسیله راهای نامشروع و راهای نادرست اون مسیر دین را عوض می کنند هم دین و فترت الله در فطرت الله التي فطر الناس عليها فترت الله هم در جبلت و فترت انسانها گذاشته یعنی yani فطرت دین خدا توحید یک تاپرستی خدا را پرستش کردن این در فطرت هر انسانی هست و هم نیکی کردن هست احسان کردن هست به همین خاطر می کسانی که این حس را دارند حس کارهای خوب انجام بدن، نیکی بکنند و حس صلح، حس امنیت، حس رسیدگی به هم نوعان، به بشر این حس فقط مال مسلمان نیست، مسلمان و غیر مسلمان هرچی بشر است این حس را دارد خب، خداوند عزواجل بر این معروف کسی که کار نیک و کار معروف می کند بیش پاداش میده اما شرط شرط ایمان است اگر انسان ایمان داشته نباشد خداوند ممکنه بیش پاداش دنیاوی بده ولی پاداش اخروی برایش نیست والذین کفروا اعمالهم كسراب بقیعته يحسبه الظمآن ماء کسانی که کفر کردند اعمال اونها مثل سراب میماند سراب ان ریگ و ریگستانی که برای بالخصوص آدم تشنه از دور مثل دریاچه آب میماند سرابم بقیع در یک دشتی در یک جنگل بی آب و علفی سحرائی بی آب و علفی که یحسبه الزمان و ما کسی که تشنه هست اونجا میره او را میپندارد آب هست اما وقتی میره میبینه که این آب نیست چند کیلومتر پیاده رفته خودش را به اون سراب رسانده اونجا میره از تشنگی حلاک میشه پس کافر هم اعمالش اینطوره، اگر کار نیکی انجام میده کار خیری انجام میده در آخرت این کار مثل سراب میماند هلاک میشه، نابود میشه، به عذاب گرفتار میشه نتیجه از کارش نمیگیرد اما در دنیا ممکن است در دنیا هر کسی که نیکی بکند قاعده کلیه نیست ولی ممکن هست که خداوند هم بهش پاداش بده پاداش کار خوب بده اگر حتی دعای بکند دعایش را قبول بکند ما قبلا خواندیم آیات زیادی هم که حتی کفار و مشرکین دعا می کند خداوند در امور دنیا دعای اونها را هم می پذیرد چون پاداش اونها را قرار است اول و آخر در همین دنیا بدهد پس اینجا که خداوند می فرماید اضل اعمالهم منظور اعمال صالحی اونها را خداوند نابود می کند هیچ اجری و ثوابی در آخرت برایشان باقی نمی الذين كفروا كَفَرُوا عن سبيل الله کسانی که کفر کردند و باز داشتند از راه خدا اضل اعمالهم این نتیجه تباہ می کند خداوند اعمالشان را نابود می کند اعمالشان را پس این وصف کفار و مشرکین با نتیجه با جزا اما وصف مؤمنین با نتیجه والذين امنوا وعملوا الصالحات کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند تنها ایمان کافی نیست مقتضای ایمان عمل صالح است هر جا در قرآن قرین ایمان عمل صالح است همراه ایمان والذين امنوا وعملوا الصالحات آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و بما نزل على محمد و ایمان آوردن به آنچه که نازل شد بر محمد صلی الله عليه وسلم ببینید بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شدند و به پیامبری تعیین شدند ایمان کافی و عمل مطلقاً به خداوند و به روز آخرت هم کافی نیست باید به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان داشته باشید اگر کسی بگوید من ایمان دارم من عمل صالح انجام میدم موسی را به عنوان پیانبرم قبول دارم این ناجی نیست کسی بگه من ایمان دارم من انجیل را قبول دارم کتاب خدا را قبول دارم اما به ایسا ایمان دارم از پیامبران، عیسی را پیغمبر خدا میدونم این کافی نیست به این خاطر اینجا اسم رسول الله رب الصراحت ذکر کرد اگر می‌فرمود و آمنوا بما نزل علی الرسول یا علی رسول یا علی نبی خب اون وقت به هر پیغمبر ایمان میاورد کفایت می‌کرد چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین هستند و چونکه که ایشون امومی هست، بیستیشون تنها برای عرب نیست، تنها برای عجم نیست، تنها برای آسیا نیست، برای کافت الناس هست وما رسلنا که الا کافت الناس برای همه جهانیان هست، همه مردم هست لذا هر یکی از جهانیان اگر می خواهد ناجی بشه، نجات بیابد، چند چیز لازم هست هم ایمان به خدا هم عمل صالح هم ایمان به محمد صلی علیه و وسلم به این خاطر اینجا نام نامیش را ذکر کردن صفتش را ذکر نکردن فقط ایمان به رسول بودن به یکی از رسولان به یکی از نبیان کفایت نمی کنه باید ایمان به محمد صلی علیه و وسلم باشد به این خاطر نام بردند و آمنو بما نزل على محمد و ایمان آوردن به تمام آنچه که نازل شد به تمام ضروریات دینی که رسول الله آورده باید ایمان داشته باشند اگر کسی یکی از ضروریات دین را قبول داشته نباشد او مومن نیست او کافره خیلی ها هستند میگه ما قبول داریم خدا را قبول داریم ولی نماز را قبول ندارند خب این منوزل على محمد صلاة است این مؤمن نیست کسی میگه من جهاد را قبول ندارم این مؤمن نیست کسی میگه من قرآن را قبول ندارم این مؤمن نیست باید به آنچه که نازل شده بر محمد صلی الله علیہ وسلم ایمان داشته باشه اما ضروریات ارض کردم اونی که تواتر رسیده اونی که بدیهی است و آمنو بما نزل على محمد و ایمان آوردن به آنچه که نازل شده بر محمد و هو الحق من ربهم در حالی که آن حق است از جانب پروردگار اونچه که نازل شده و محمد صلی الله علیہ وسلم هم حق است از جانب رب است خب این صفت مؤمن است مؤمن اگر این صفت را داشته باشد پاداشی او چی است کفر عنهم سیعاتهم دوتا پاداش خدا ذکر می کند یکی دفع مذررت دوم جلب منفعت اول زرر و آسیب و مشکل را خدا ازش دور می کند و دوم خیر را خدا برایش جلب می کند کفر عنهم هم کفاره می فرماید از آنان سیئاتشان را یعنی جزائی سیئات را جزائی بدیها اگر گناهی کرده اگر اشتباهی کرده خداوند همه را کفاره می فرماید همه را نادیده می گیرد دوم جلب منفعت نتیجه دوم و با با اصلح بالهم و اصلح بالهم ای اصلح حالهم خداوند حال انها را درست می کند حال انها را اسلاح می فرماید یعنی خداوند وزی اونها را هم در دنیا هم در آخرت اصلاح می فرماید این حال کسانی هستند که ایمان آوردند به رسول الله صلی الله علیه وسلم خب چرا وزی کفار اونه و وزی مؤمنین اینه دلیل ذالک بان الذين كفروا تبعوا الباطل وان الذين آمنوا تبعوا الحق من ربهم بسبب این است که کسانی که ایمان آوردند کسانی که کفر کردند به ان الذين كفروا اتبعوا الباطل پیروی کردند باطل را شرک باطل کفر باطل نفاق باطل کسانی که را این راه را پیمودند آنها دنبال روی باطل هستند وان الذين امنوا اما كسانك ایمان آوردن اتبعوا الحق من ربهم پیروی کردند حق را که جانب رب سبب موفقیتشون هم همین چیز است که پیرو حق شدن قرآن حق رسول الله حق قیامت حق توحید حق انها را كذلك يضرب الله للناس امثالهم این گونه بیان می‌فرماید خداوند برای مردم امصالهم یعنی احوالهم احوال مردم را ببینی احوال یعنی صفات صفات مردم را خدا انگونه بیان می کند اون صفت کافر این صفت مؤمنه. پس صفات مشخصه هر که دوست داره هر صفتی را انتخاب می کند میره دنبالش فَإِذَا لقيتم الذين كفروا فَضَّرْبَ الرِّقَاب این موضوع سوره هستو موضوع محوری سوره و مرکزی سوره این هست. چونکه کفار دارای این صفات هستند. کفار دنبال باطلند. کفار نسبت به توحید و رسالت و قیامت کفر می کنند. و نه تنها کفر می کنند و صد عن سبیل الله از راه خدا هم باز می دارند. اینو کفار را گردنشون را لذا الله می فرماید فاذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب هرگاه ملاقات کردید مواجه شدید با کسانی که کفر کردن رو به شدید در میدان معركه فضرب الرقاب ای فضربوا ضرب الرقاب پس گردنشون را بزنید اینهایی که و این که تو میدان آمده هم میخواهد که جلوی دین را بگیرد جلوی شما را بگیرد حتی اذا افخنتموهم فشد الوثاق حتی وقتی که خوب خونشون را ریختید اسخان خون ریختن را میگن فشد الوثاق محکم ببندید وسیق ببندید شد یعنی ببندید محکم قیدشون کنید منظور چیه اسیرشون کنید هم کفار را در میدان جهاد و معرکه میشه کشت و هم میشه اسیر کرد اسیر که کردیم دیگه جهاد و احکام جهاد بیان میشه بعد از اینکه که کفار اسیر شدن چه بکنیم خداون اختیار داده امیر مسلمانان کسی که در رأس هست کسی که خلیفه مسلمان او مصلحت را نگاه میکند فَإِمَّا فا منن بعد وإما فداء بعد از این مرحله یا منت گذاشتن ایت منون منن بر کفار منت بدون هیچی میخواهیم احسانمون را حسن زن و حسن عمل خودمون را نشون بدیم که ما جنگ طلب نیستیم ولی ما جلوی فساد را میگیریم پس کار میکنی منتی میگذاری؟ منت یعنی بدونی هیچ گذاشتن. منت اینه که البته منت در صورتی گذاشتن با منت که منفعتی برای مسلمانان داشته باشد. خیری برای مسلمانان داشته باشد. پس یا بر اونها منت و احسان بگذار بعضی وقتها منت میگذاری می، و راه میکونی مسلمان میشن میگن ببینید که و ما به دستشون افتادیم هدف اینها کشتن نیست ببینید این که بعضی بر علیه اسلام تبلیغات میکنند و میگن اسلام دین خونریزی هست اسلام دین خونریزی نیست این الان کافر به دست مسلمان افتاده اون که تو جهاد است اون اسلحه به دست اینکه الان اسیر شده این اسلحه به دست ندارد کشتن اون کو تو جهاد است کشتن اون سخت کشتن اون راحت این راحت خدا نمیگینه بکش البته یکی از صورت ها اگر مصلحت بر این باشه مصلحت ایجاب میکنه اونم جایزه اما خداوند عزوجل میفرماید که این را منت میتونی بذاری بدون هیچ چی رها کنی پس هدف خون ریزی نیست خون ریختن نیست کافر کشتن نیست هدف جهاد چیه مبارزه با فساد است می خانیم انشاءالله فلسفه جهاد هم مبارزه با فساد است وقتی که فساد از بین رفت حتی کفر مبارزه با کفر نیست این را خدمت شما بگم خیلی از کفار بودن رسول الله صلی الله علیہ وسلم با اونها نجنگید در سوره توبه میخوانیم بسیاری از کفار بودند که عهد را شکستند بسیاری عهد را نشکستند اونایی که عهد را نشکستند خدا دستور داد که شما با اونها تا زمانی که عهدتون هست ادامه بدید سلح اشکالی نداره رفت و آمد بکنید داد و ستت بکنید پس کفر علت جهاد نیست فساد علت جهاد است اگر کافر مثل بچه آدم بشیند و فساد نکند ما دستور نداریم بابایش بجنگیم بی اما وقتی که فساد میکند تمرد میکند سرکشی میکند و بلاد مسلمین را غارت میکند اون وقت این فساد است این فساد را باید کن کرد این فساد را باید از بین برد پس وقتی که دستگیرش کردی فا اما منن یا مننت بگذار و رخائش کن بعد از این و اما فدان یا فدیه وقت از نظر مالی مشکل داری از نظر حزینه مجاهدین مشکل داری از نظر تسلیحات مشکل داری اقتصادت زیفه خب همین اسیران را با فدیه آزاد کن هر اسیری ده هزار دلار، پنج هزار هر چی میشه آزاد کنو فدیت را بگیر این هر دو صورت درسته این هر دو صورت را انجام بدید حتی تضع الحرب اوزارها حتی که بار جنگ به زمین گذاشته بشه جنگ بگذارت به زمین سنگینیش را بارش را یعنی چه یعنی یا اسلام و یا استسلام یعنی با کفار می تا کمی جنگیم تا زمانی که یا اسلام بیاورند یا استسلام تسلیم بشن بگن که ما از این به بعد اشتباه نمی کنیم ما به همون قرارداد خودمون عمل میکنیم سر جایمون میمانیم تسلیم بشن قوانین و ضوابطی که ما برایشون تعیین کردیم به اون قوانین و ضوابط تن بدهند پس این هست در واقع التي جهاد وفلسفيه جهاد ذلك ذلك يعني یعنی افعلوا ذلك ان كار شما بکنید شما مسلمانان ولو يشاء الله لن تسر منهم حكمه جهاد ببینید الا اعوذ بالله خداوند و جل عاجز نیست ضعیف نیست ناتوان نیست که به منو تو بگه تو برو برای دین من بجنگ تو برو برای اقامه توحید و اعلیه کلمت الله بجنگ نه خدا اگر میخواست خودش کفار را دشمنان خودش را با یک کن نابود میکرد و لو الله لنت سر منهم خدا میخواست خودش از دشمنان خودش انتقام میگرفت اما چرا به من و شما دستور داده جهاد کنیم؟ ولیکن لیبلو بعضکم به بعض اما تاک بیاز ما یدبازی از شما را بعضی این جهاد برای ما امتحانی هست میدان موفقیت یا نموفقیتی است. بعضی ها که اهل حقند و اهل ایمانان با بعضی که اهل باطل هستند بیازماید که ببیند آیا اینها در این امتحان فائق و فائز میاند یا نه لذا یک نکته اینجا از این آیات حتما بر صفحه قلب خودمون بنویسیم که کار دین مسائل دینی، فعالیتهای دینی، فرهنگی و جهاد بر من و شما مسلمانان است اگر کسی بگوید خدا خودش درست کند و خدا حتما درست میکنه اما اگر یک انسانی بگه خدا خودش درست بکند و دست بالای دست بگذارد این انسان قرآن را نفهمیده پیام خدا را درک نکرده خدا اگر میخواد درست بکنه به وسیله من و تو درستش میکنه به وسیله بندگان خودش اسلام میکنه لذا هر جا منکری هست هر جا فسادی هست هر جا مشکلاتی هست هر جا معاسی هست فقط به دعا بسنده نکنید که مقصر هستیم بگیم خدا تو درست کن نه باید فعالیت بشه جهاد بشه امر به معروف نهی از منکر فعالیت تکدو و دعا و الا اگر خدا میخواست به تعبیر حضرت شیخ روزی فرمودند، به کسی اگر خدا میخواست خودش درست کنه پس منو تو را چرا درست کرده منو تو را چرا خلق کرده خدا میخواست درست بکنه به وسیله من و شما بس هر جا مشکلی میبینید، مشکل دینی میبینید، ظلمی میبینید، فسادی میبینید، گناه و معصیت و منکری میبینید، خودتون را اونجا معظف بدانید، مسئول بدانید، خدا اونه درست میکنه ولی به وسیله تو درستش میکنه. بس اقدام کن، خداوند میفرماید. اگر خدا می خواست لنتا سر من هم خودش انتقام می گرفت از اونها اما نه خدا خودش مستقیم وارد صحنه و میدان نمیشه گرچه تو اقدام بکنی خدا تو را حمایت میکنه تو همین سوره میخانیم که شما دین خدا را یاری می خدا شما را یاری میکنه خدا شما را را رحا نمی کند چنانچه از صدر اسلام تا به امروز در تمام میادین هر وقتی که مسلمانان واقعا جهاد کردن خدا یاریشون کرده امتحان آمد مشکلات آمد سختی آمد اما خدا موفق کرد یاری کرد لذا الله می فرماید ولیکن لیبلو بعضکم ببعض اما می آزماید شما را بعضی احراز به وسیل بعضی والذین قتلو فی سبيل الله فلن يضل اعمالهم خب اگر اینه که من رفتم و در راه جهاد اگر کشته شدم شهید شدم نتیجه چی میشه ببینید این اولا خدمت شما عرض کنم که دوتا تفسیر داره یک تفسیر اینه که فلن يضل اعمالهم اعمال اعمال نیکی که انجام دادیم در آخرت اینها رضای نمیشه خدا اجر اعمال رب ما میده و قتلوا في سبيل الله کسانی که کشته میشن در رای خدا شهید میشوند هرگز خداوند اعمالشون را زای نمیگرداند بهترین اجر و پاداش بهترین جایگاه و رتبه در بهشت بهشون عنایت میکند یک تفسیر اینه اما تفسیر دیگری انقلابی که این تفسیر بیشتر به ذهن منشینه بنده ارز کنم شما انشالله بیشتر میپسندید و بسیاری از علماء این تفسیر را ذکر کردند اون چیزی دیگه هست اون اینه که این در رابطه با آخرت نیست در رابطه با دنیا است ببینید شما یک انسان فاضل یک انسان شایسته یک انسان دانشمند فعال دینی اجتماعی شما اگه شب و روز فعالیت می‌کنی اگر بری در راه خدا کشته بشی اون وقت این کارها رو بکنه گاهی خود شیطان ما به همین صورت فریب می‌ده اگر من برم پس مدرس کی میشه که درس میده که نماز میده که قرآن آموزش میده این چیزها شاید بیا پس ما مثلا ما یک حزبی داریم ما یک نهضت دینی داریم ما یک حرکت دینی داریم ما میخوایم همه مسلمانان دیندار بشن پس اگر ما بریم جهاد بکنیم کشته بشیم این برنامه های ما ناموفق میمانه نیمکاری میمانه این خدا اینجا یادآوری کرده که ای انسانی مومن ای انسان فاضل ای انسان دانشمند ای عالم ای طالب ای دعوتگر، ای فعال دینی و اجتماعی کشته بشی برنامه‌هایت ناقص نمیشه برنامه هایت ناموفق نمیشه خونت اگه بریزه این نهضتت را خدای عزوجل چنان پیشرفت و ترقی میده ده ها مثل تو پیدا میشه که این نهضت را به پیش میبرد این معناه است، والذین قتلوا فی سبیل الله کسانی که کشته شدند در رای خدا و کشته بشوند در رای خدا فلن یو ظل اعمالهم، هرگز برنامهاشون ناموفق نمیشه، هرگز برنامهاشون ناموفق، الان ببینید مجاهدینی که شهید شدند، اینا به خاطر چی رفتند؟ خاطر اینکه اسلام پیروز بشه، خاطر اینکه نام خدا بلند بشه، خب اونا خودشون شهید شدند، اما دیگه اسلام ناموفق شد نه، پشت سر دیگرانی بودند، خداوند دیگرانی را علم کرد به برکت اون خونهای پاک، به برکت اون خونهای مقدس، پشت سر خداوند دیگرانی را ایجاد کرد که اهداف اونها را به منزل مقصود رسندند، بس به این معنی هست که کسانی که در رای خدا شهید میشون فکر نکنن برنامه با رفتن اونها ناموفق میشه فکر نکنن که کار تعطیل میشه فلان یو دل اعمالهم هرگز برنامه ها و اعمالشان زایع نمیشه نابود و تبا نمیشه این تفسیر دوم و معنی دوم بود سیهديهم و یسلح بالهم ان قریب الله انها را می فرماید و یسلح بالهم بالهم یعنی حالهم حال انها را اسلامی فرماید در تمامی مواقع. پس اگر مربوط به دنیا باشد خداوند قدم به قدم انها را و شاگردان انها را و همراهان انها را و پیروان انها را راهنمایی می کند خداوند الهام می کند خداوند پیشرفت انایت می کند. ببن هر نهضتی که در دنیا برای دین قربانی داده اون نهضت از همه نهظتها موفق موفقتره و فعالتره و هر گروهی نهضتی که قربانی ندادند اون به اون صورت حال نداره و یه حالت ارز کنم که ضعیفی داره پس اینها را خداوند حالشون را اسلام می فرماید کسانی که کشته می شوند و راهنماییشون می فرماید الهامشون می فرماید اما اگر مربوط به آخرت باشد سمره اخروی نوشتن بزرگان سیهدیهم ان قریب خداوان انها را راهنمایی می فرماید و یوسل حبالهم حالشون را درست می فرماید یعنی در تمام مواقع آخرت در قبر در حشر، در صراط خداوند چیکار می کند؟ اینها را راه می کند و یدخلهم الجنة عرفها لهم عاقبت و نتیجه همه مراحل رکتی کردند همه ارز کنم که درجات را پشت سر گذاشتند و یدخلهم الجنة خداوند انها را داخل بهشت می گرداند عرفها لهم تعین کرده این بایش را برای اونا تعریف کرده یعنی تعین و مشخص کرده لذا این هست صفت مجاهد صفت مؤمن صفت موحید واقعی بعد از این الله عزوجل ترغیب میده مؤمنین را شما چه کار کنید این هم ترغیب خدا هست هم زجر برای کفار است در لابلای این ترغیب و زجر صفات مؤمنین و صفات مشرکین دوباره ذکر شده ارز کردم در بخش اول فقط تقابل صفات است يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم أي مؤمناً أي كسانك شما بوحدانية الله إيمان أورديد ان تنصر الله اگر شما ياريك رديد الله ر يعني دين خدارة ينصركم الله شما رياري ميكند در زمان المبارزة در زمان الجهاد ويثبت أقدامكم وشما قدم می‌گرداند در مقابل دشمن. بعضی وقتا خداوند چنان سواب قدمی به مجاهدان انایت می‌فرماید که خودشون باور ندارم ما چطور نترسیدیم، چطور تونستیم دوام بیاریم. این کار خداست. اما مشرکان والذین كفرو كسانی که کف کردند فتاع سلهم تاس یعنی هلاکت. نابودي براي انها وأضل أعمالهم أعمالشان در آخرت برباد مشهد در دنياهم چراغشان چراغ فعالياتشون خاموش مشهد ودر آخرتهم عملي نظرا بعضهم دليل شرا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم این بسبب این است که انها نپسندیدن کریهو بنویسید اعتقادا و عملا یعنی نپسند داشتن هم از نظر اعتقادی و هم از نظر عملی چرا نپسندیدند؟ ما انزل الله را قرآن را نسبت به قرآن اکراه داشتن قرآن را قبول نداشتن ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله نفسا ديدا انزكي الله نازل فرموده فاحبط اعمالهم الله اعمال انهرى حبد فرمود ضايفر فرمود از بین برد افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ان تخويف استخويفه دنيوي این کفاری که دارندگان این اعمال هستند اعمال کفریه، اعتقادشون عملشون خراب فساد دارند اینها ببینند خداوند با هم کیشانی اینها با هم نوعانی اونها در ازمنه گذشته چیکار کرد عبرت بگیرند افلم یسیرو فی الارض آیا این سیر نمی کنند در زمین فینظرو کیف کان عاقبت الذين من قبلهم غرز سیر ببینند چگونه شد انجام کسانی که قبل از این بود انجام آنها چی شد عاقبت آنها چی شد دمر الله عليهم خداوند نابود کرد بر آنان یعنی اونها را خداوند از بین برد وَلِلْكَافِرِينَ امثالها این بیان سنت الله بنیسید و برای, برای چنین کافرین امثال آن هست امثال آن یعنی انجام بد انجام بدی برای این کافران موجود هم مثل اونها هست چرا؟ چونکه عرض به خدمت شما اینها دشمنان خدا و دین خدا هستند ذالک بان الله مولا الذین امنو این باز دلیل دیگری بر این پاداش چرا خداوند مؤمنان را یاری میکند نصرت میکند کفار را نابود و هلاک میکند خداوند عز و جل می فرمید ذالک دلیلش اصلش قبل از بان الله لتستقنو مقدر است این برای این است که شما یقین کنید شما باور کنید بدلتون بنشیند چی چیزی؟ ذالک بان الله مولا الذین آمنو این بسبب این است که همانا الله کارساز مؤمنان است مولا ولی قبلا بخدمت شما گفتم ولی یعنی حامی مولای یعنی ناصر یعنی یاور نصرت کننده کارساز مؤمنان که در معرکه پیروز هستند چون خدا کارشون را درست میکنه خدا کارساز و مشکل گشایشون هست اما کفار هیچ مولایی ہی نداره هیچ کسی که مشکل اونها را حل کند چون اونها مولاهایشون مولاهای پوشالی هستند تو خالی هستند قدرتی نداره اونها از آلیه باطر کمک میخوند که آنها هیچ کمکی نمی‌توانم بکنم و ان کافرین لا مولا در مقابل الله هیچ مولایی و هیچ حامی و ناصری ندارند پس این دلیل هست که خداوند اهل ایمان را یاری میکند اهل کفر را نابود میکند ان الله يدخل الذين آمَنُوا از این به بعد دوباره تقابل هست اما قبلا تقابل با صفات بود اینجا تقابل با جزا هست با پاداش هست مؤمنان را خدای تعالی چی پاداش میده، بهشت و راحت آخرت کافران را چی پاداش میده و چه جزای میده؟ ده؟ آتش جهنم جایگاهشون آتش جهنم هست اما دقت بفرمایید آیه را الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات بدون شک خداوند داخل می‌فرمایید کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند جنات تجری من تحتها الانهار در اون باغات در اون جناتی که جاری است از زیر اون باغات از زیر درختانشون از زیر قلعه‌ها و ساختمان‌هایشون خصورشان نهرها جاری هست خب خداوند این پاداش را بیشنده چرا چون آمنو و عملو صالحات اما کفار را ببینید والذین کفرو کسانی که کفر کردند انجا اعتقاد ایمان انجا کفر انجا اعمال آمنو و عملو صالحات انجا اعمال چیه لذات شهوترانی خوشگزرانی گذرانی یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام یتمتعون یعنی بحر میگیرند از لذات دنیا و یاکلون و می خورند کما تاکل الانعام همان گونه که چهارپایان می خورند همان گونه که چهارپایان می خورند اینا همون طور می خورند ببینید تش تشبیه در چه چی چیزی هست؟ بفهم آیا مؤمنین ما صفاتشون رو که بعد از ایمان عمل صالح هست کافران صفاتشون را خاندیم که بعد از کفر ایشونوش است خوش گذرانی است یتمتعون و یاکلون کما تاکول یعنی هدف اینها خوردنوش است هدف اینها خوش گذراندن هست دیگه هدفی ندارند و الا نفس خوردن را خدای عزوجل برای مؤمن و کافر گذاشته گرچه مؤمن در خوردن آداب خاص خودش را دارد دستورات خدا را رعایت می کند اما هدف از خوردن شما همچی هست عمل صالح هست مؤمن برای چی می خورد؟ تقویت بشه نماز خوب بخواند. حج را درست انجام بده دستورات خدا را عمل بکنه اما کافر برای چه میخورد؟ اولین چیز هدف فرق دارد کافر برای چی میخورد؟ کافر برای این میخورد که گذرانی بکند کافر برای این میخورد که لذت حاصل بکند دوم، مومن میخورد همرا با خوردن فکر آخرت دارد، کافر کلونه کم الانعام یعنی بی فکر از آخرت بی فکر از آخرت و بعضث چارپایان ببین کما کم انعام تشبیه به چارپایان است در خیلی چیزها. چارپایان هرچی جلوشون باشه میخورند. اونها طیب و غیر طیب پاک و ناپاک حلال و حرام از این از چیزا چیز سرشون نمیشه علف, چی ما، علف صاحبش هست چه علف همسایه هست هرچی باشه میخوره زراعتش مال خودش باشه مال دیگری باشه میخورد. هیچ فکری برای حلال و حرام نیست برای پاک و ناپاک نیست برای مال خود و مال غیر نیست کافر اینطور است اما نه در همه اینها قوانین خدا را رعایت می کند و دیگر حیوان وقتی که می خورد و بلا نسبت بعد از خوردن شهوترانی می کند برای او هم هیچ چیزی جلوش مهم نیست مطرح نیست کافر هم همینطور است ببینید تفسیر جلال النبیشته لیس هم الا وفروجهم ولا یال تفیتونه یلا آخره کافر وقتی کی میخورد هیچ دیگری ندارد هیچ هدفی همت نزارش نیست مگر شکم پر بشه و بلا نسبت بلا تشبیه شهواتران باشه شهوتش رو کامل بکناد و اصلا فکر آخرت را ندارد اما مؤمن نا مؤمن حلال را از حرام میشناسد پاک را از ناپاک میشناسد جائز را از ناجائز همه همین را رعایت میکنند. اون در حدود خداست بس والذین کفروا یتمتعون کسانی که کفت کردند لذت حاصل میکنند و یأکلون کما تأکل الانعام میخورند گونه که چارپایان میخورند این نتیجه شون چی میشه؟ وَالنَّارُ و مَثْوَلْ اللهم آتش جایگاهشون است. هست ببینید بسیار جای تأصف هست که بعضی از کسانی که خودشون را مؤمن می نامند ولی مؤمن نیستند مسلمان نما هستند تظاهر به ایمان می کنند صفاتشون صفات کفار است کم هم نیستند خیلی ها هستند بسیاری کسانی که خودشون را مسلمان می‌نامند، برای اونها در تجارت حلال و حرام فرقی نمی کند. معامله و ربا فرقی ندارد لقمه پاک و ناپاک فرقی ندارد ارز کنم که لقمه حلال با حرام هیچ فرقی ندارد خانه حلال با خانه حرام هیچ فرقی ندارد هم مغمیشون وقتی نگاه میکنی زندگیشون را مطالعه میکنی میبینی از اول تا آخر اینا هم مغمشون اینه که فقط پول بیاد مال بیاد از کجا میاد چطور میاد با او کار ندارد از هر طریقی میاد فقط بیاد و بعد وقتی که میاد در خوردن هم در تعیش در گذرانی، هیچ کمی نمی کند هیچ نگاه نمی کند که آیا جائزه نجائزه آیا گناه هست یا جائزه لذا و بعد برای خوشگزرانی هر جا می روند هر کاری هم میکنند. نه فرقی بین مشروب و شربت هست نه فرقی بین حلال و حرام هست پس اینها در واقع اسمشون مسلمان است، وصفشون وصف چیه؟ کفار است یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثول لهم خدا پناه بده جایگاه چنین افراد آتش است والنار مثول لهم آتش جایگاهشون هست وکا ای من قرية هی اشده حال خدای تعالی وقتی که فرمود کفار جایشون آتش جهنم هست تنها در آخرت عذاب برایشون نیست در دنیا هم هست نمونه ای از تخویف دنیایی در در دنیا خداوند می فرماید و که ای من قریه چقدر از قریها و اهل قریها که هی اشد قوت من قریتی که لطی اخراجت که اون قریها از نظر قدرت و قوت شدیدتر بودند از قریه شما ای محمد صلی الله علیه وسلم این قریهی که اللتی اخرجت که که تو را بیرون کردند قریه و اهل قریه که رسول الله را بیرون کردند کدوم قریه بود مکه یعنی در گذشته شهرها و قرائی بوده که اهل اونجاها اهل اونها از اهل مکه قوی تر بودند نیرومنتر بودند اهلکناهم ما اونها را حلاک کردیم مثل عاد، مثل سمود، مثل قوم لود، مثل قوم فرعون، فلا ناصر لهم، هیچ یاوری برایشون نبود، صدها خدای پوشالی و دروغین داشتند، ولی هیچ خدای نصرتشون نکرد، معنیش اینه که عاقبت و انجام مخالفان شما، مشرکان مکه، هم همین خواهد بود. افما من کان علی بینت مِال ربه کمن زین له سوء عمله بازم تقابل بازم فرق بین مؤمن و کافر آیا اون انسانی اون مؤمنی کی کان علی بینت مِال ربه و بر بینه اس از جانب رب، ربه بر دلیل هست بر مدرک و برهان است که من لهو له سوء و عمله آیا او مثل اون کسی میتونه باشه که آراسته شده برای او سوء عملش چون کافر و مشرک شیطان برایش عمل سوء را عمل مشرکانه را آراسته کرده او فکر میکنه من برحق حق هستم آیا اینها با هم برابر هستند نیستن اون کسی که زینا له سوء و عملیه و تبعو احوائهم، اونهای که پیروی می کنند خواهشاتشون را، یکی هوای نفس را پیروی می کند، یکی فرمان رب را پیروی می کند، اینا با هم برابرند، هرگز برابر نیستن لذا برای کسانی که تابع فرمان رب هستند، چه پاداشی هست، چه جزای نیکی هست، چه انعامی هست خداوند عز و جل اینجا ذکر وصف بهشت می فرماید مثل الجنت التي وعد المتقون مثال یا صفت اون بهشتی که وعده داده شدن متقیان صفت اون بهشت اون بهشتی که مال اهل ایمان هست اهل تقوی اینجا هم ببین بهشت مال متقیان است تقوی را پیشه بگیرید مثل الجنة التي وعد المتقون، صفتهم بهشتك وعددات شدن متقين، فيها أنهار من ماء غير آسن، جبسان نهرهاي بهشت بهشتس آب الزلال، غير آسن، يعني غير متعفن، غير متغير، آب زلال پاکی هست که تغییر نمی کند، متغییر نمیشه، بو نمی گیرد، رنگش خراب نمیشه. و آن ها رم من لبنی لم يتغيير طعمه و چه بسا نهرهای در اون بهشت هست از شیر که لم يتغيير طعمو طعمش تغییر نمی. آب شیر تازه هست. و آن ها رم من خمر لذت الشاربين نعمتس و نهرهای هاي هس هست از می از شراب اما نه شرابی که عقل را از بین میبرد سکر ایجاد میکند انسان را سرگردان میکند نه بلکه لذت للشاربين موجب لذت میشه برای کسانی که بنوشند و چهر و انهارم من عسل مصفا و نهرهایی هست از اصل اما اصل صاف مصفا یعنی خالص اصل خالصی که در اون اصل اصل هیچ چیزی دیگه آمیخته نشده در اون اصل مثل اصل دنیا قلابی نیست تقلبی نیست اصل اصلش هست بس این نهرهای متفاوت برای اهل بهشت در بهشت وجود دارد و علاوه از اینها ولهم فیها من کل ثمرات برای آنان در آن بهشت از همه میوه ها هست انواع میوه ها برایشون هست که استفاده بکنند ایش نوش بکنند اما الله عزوجل این بهشت را که بیان فرمود این بهشت بهشت جسمانی هست این بهشت چیه؟ جسمانی هست یعنی جسم انسان لذتش را می برد بهشت دونو هست یکی بهشت جسمی هست یکی بهشت روح هست روح انسان لطف می برد روح انسان شاد میشه در صورتی که الله عزوجل بنده را ببخشد بگه ای بنده من تو را بخشیدم و الله اعلام رضایت بکند ای بنده من از تو راضی هستم الله از همه ما راضی باد این بزرگترین بهشت و بزرگترین انعام است در بهشت رضوان من الله اکبر رضایتی که از جانب الله اعلام بشه اون همه نعمت ها هست اون رضایت بیشتر است از این نعمت های مادی از این حور و از این باغ و از این ارز کنم که انواع نوشیدنی ها او بهتر است لذا الله اینجا نعمت روحانی را بعد از نعمت جسمانی یا بهشت روحی را و معنوی را بعد از بهشت مادی بیان فرموده و مغفرت من ربهم زیرش بینیسی قبل از ورود قبل از ورود قبل از اینکه وارد اون بهشت بشه، مغفرتی از جانب رب شامل حال این انسان میشه، نصیب این انسان میشه، بهش اعلام میشه که تو بخشیده شدی، الله اون لحظه بنده چه حالتی دارد. مغفرتی که انسان در تمام یک مومن، در تمام دنیا هم مغم میشمینی که من بخشیده بشم، خدا را طاعت و بندگی می کند، در نیمه شب دعا می کند، در سجده گریه می کند، بعد از هر طاعت و عبادت دست به دعا بر می دارد، لذا وقتی که اون چیزی که انسان سال های سال برایش تلاش می کند، و بعد از خودش هم توصیه می کند، برای من دعا کنید، برای من صدقه بدهید، صدقه جاریه بدهید، و قرآن بخانید، ایسال سواب بکنید، بعد از این همه سالها به انسان گفته میشه قد غفرتو لک ای بنده من تو را بخشیدم. لذا بزرگترین خوشی برای یک بنده این میتونه باشه و مغفرتم من ربهم کمن هو خالدون فی النار آیا این بهشتی که دارن دارنده این نعمت ها هست هم بهشت جسمانی را دارد هم بهشت روحانی را دارد کمن هو خالدون فی النار ماره مثل اون انسانی میماند که او همیشه در آتش میماند خالدم فی به صورت خلود در آتش است و سقو مان حمیما و با جای این همه نوشیدنی‌های خوب خوب بهش میدهند نشانده میشه آب داغ آب جوش چنان آب جوشی که اللہ پناه بده فقط تع امعاءهم انها اونها رو چی میکنه تک تک میکنه رودهایشون می میسوزونه تک تک میکنه آیا این دو گروه با هم برابر هستن پس ببینید این تفاوت مؤمن و مشرک به اعتبار چی هست به اعتبار جزا هست و هم من یستمیع الیک خب اینجا هم بحث جهاد بود و هم بحث تقابل اهل ایمان و اهل کفر اما در این وسط یک گروه دیگه هست منافقین لا اله هاولئی ولا اله هاولئی نمومن خداوند اینجا سرزنش می فرماید توبیخ می فرماید این گروه منافق را و منهم من یستمع بعضی از آنها هستن که استماع می کنن شما یعنی سخان شما را گوش می کنن حتی اذا خرجو من عندک حتی وقتی که خارج می از محذر شما از خدمت شما قالو لیلذین اوتو العلم می به اهل علم صحابه به کبار صحابه ماذا قال آنفا زیر این ماذا قال آنفا بنویسید علا جهت الاستهزا به صورت مسخره میگوین که رسول الله چی فرمود الان الان چی فرمودند یعنی گویم من این جمله را نشانیدم توسخور میکنه ماذا قال آنفا علا جهت الاستهزا ای انا لم التفت من اختفات نکردم توجه نکردم چی فرمودند اینها ان؟ در واقع دنبال حق نیستند دنبال هدایت نیستند دنبال جمله های رسول الله نیستند اولئک الذين طبع الله على قلوبهم اینها کسانی هستند که خداوند مهر زده بر دل‌هایشان اینها را خداوند مهر زده بر دل‌هایشان و تبعوا اهواءهم اینها کسانی هستند که دنبال کردند خواهشاتشان را پس ببینید منافق هم هوا پرسته، خواهش پرسته. یک مؤمن نباید دنبال خواهشات باشه، نباید دنبال هوای نفس باشه که این صفت سفته منافق هست. اما در مقابل این منافقین هم مؤمنین مخلصین، والذین احتردو زادهم هدن و آتاهم تقواهم کسانی که هدایت شدند، راه هدایت را یافتند. زادهم خداوند می افساید در آنان هدایت را کسانی که دنبال هدایت هستند خدا بیشتر هدایتشون نصیب می کرداند و آتاهم تقواهم تقوا در مقابل اتباع هوا چون تقوا یعنی اتباع خدا اتباع قرآن و اتباع دستورات رب اما هوای نفس یعنی اتباع شیطان اتباع نفس پس وآتاهم تقواهم در مقابل اتباع هوا فرمود فهل ينظرون الا ساعة ان تأتيهم بغتتا الله فرماید انها منتظر نیستند مگر منتظر قیامت است یعنی در دنیا قابل اصلاح نیستند در دنیا هیچ دلیلی هم اینها را غانه نمی کند. تنازماني زمانينها غاني مشان كي قيامت بي آياد فهل ينظرون منتظر نيستن إلا الساعة مگر منتظر قيامت ان تأتي يهم بغتة انكي قيامت ناغهان بياد اما خدا وانمي فقد جاء أشراتها يعني علائم قيامت آمد فقد جاء أشراتها علائم قيامت آمده نشانات قيامت آمده خود قیامت منده ببینید علائم قیامت بعضی ها در زمان رسول الله ظاهر شدند بعضی ها در زمان ماها ظاهر شدند بعضی ها هنوز ظاهر نشدند در قرآن و در سنت علائم زیادی برای قیامت گفته شده این علائم را وقتی که ما نگاه میکنیم علما این علائم را تقسیم کردن به سه دسته علائم بعیده علائم متوسطه علائم قریبه علائم بعیده اون علامت هایی که علامت قیامت اما از قیامت فاصله داره مثل بیست رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل انشقاق قمر اقتربت الساعه وانشق قمر مثل وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم این تمام علامت های قیامت هستند که این علامت ها دیده شدند بعد از این علامت ها قیامت نزدیکه اما نزدیکی یک نزدیکیه که بر اساس شرایط ما هست ما عمر منتمام پنجه ساله شست ساله افتاد ساله خب نزدیک از نظر ما فرق داره اما از نظر الله چیزی دیگه هست. و دفهم علائمی که رسول الله بیان فرمودند و این علائم فرمودند در نزدیک قیامت اتفاق میفته این علائم را متوسطه میگویند علائم متوسطه مثل چی؟ مثل این که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند یه زمانی میاد ان انتر الحفات العرات العاله رعاء الشائع يتطاولون في البنیان می بینی انسان های بدون صلاحیت را، انسان هایی که سر لختن بدنشون لخته پایشن لخته انسان هایی که دیروز رعا اششا چوپان بودند، یا تطاولون فی البنیان امروز آمدن در بورد سازی در ساختمان سازی در بنا سازی با هم دیگه مسابقه می دند. و میگه مال اون پنج طبقه مال ساختمان من باید هفت طبقه باشه اون یکی دیگه میگه مال من باید ده طبقه باشه این از علائم متوسط غیر از این علائم متوسط رسول الله صلی الله علیه و سلم در بانه برای گفت که اینها نزدیک قیامت میایند اینها هم جز علائم متوسطه هستند که بسیار ربکاسیات عاریات بسیاری از زنها هستند که لباس پوشیدند ولی در واقع چون لباسشون یا نازکه یا لباسشون تنگه که تمام اعضای بدنشون نمایان هست و فرمود که رؤوسهن که اصنمت البخت سرهای اونها مثل کوهان شطور است و از اوصاف این زنها فرمود و بعدا جزایشون را فرمود که اینها ریح بهشت را بوی بهشت به مشامشون نمیرسه چه برسه به خود بهشت و فرمود کرد بهشت از فاصله دور به مشام انسان میرسه یعنی اینها در فاصله خیلی دوری از بهشت قرار دارند لذا این از اینها از علائم قیامت ہے رسول الله صلی الله علیه و فرمود که از علائم قیامت دیگه این هست که زن سالاری میشه یعنی سالار و حرف اول را زن میده، زنها جلو هستن مردها مثل خادم پشت سرشون هستن و فرمود که از علائم قیامت اینه که انسان با مادرش مثل یک کنیز رفتار میکنه. مادر نیست انگار کنیزه با شتل و با لگت از او کار میگیره، اورا چنان بر اون تند میره و تشر میگه که مادر بیچاره از ترس کارها را انجام میده پدرها و مادرها نافرمانی میشن قتل زیاد میشه زنا زیاد میشه میخاری و سودخاری زیاد میشه انسان هایی هستند که شلاق به دست مثل ارز کنم که دوم گاو با اون انسان ها را می زنند انسان های شریف عقب زده می شوند انسان های بیارزش و پس در رأس قرار می گیرند آیا همه این علائم در زمان ما هستند یا نیستند این ها را می گوه متوسطه غیر از این علامت ها زیاد هستند فرمود پلیس زیاد می شه قتل زیاد می شه و زیاد می شه و مسلمانان چنان در ضعف قرار می گیرند که تمام کفار متحد می مثل چند تا گرسنه که بر یک ظرف غذا حمله می کنند همینطور با هم مشوره می کنند که بر مسلمانان حمله بکنند و چه بسا حمله هم می کنند همه این علامت هایی که آن حضرت فرموده شما دقت بفرمایید تک به تک اینها این علائم متوسطه در زمان ما متاسفانه همه اینها ظهور کرده. این قسم دوم دو از علائم قیامت هست علائم متوسطه گفته میشه که اینها در زمان رسول الله نبود در خیر القرون نبود در زمان صحابه نبود تابعین تابعین اما در زمانهای بعد ایجاد شد علائم سقوم علائم قریبه هستند اون علامت هایی که نزدیک قیامت هستند نزدیک قیامت چه علامت هایی هستند آن حضرت صلی عليه و وسلم ذکر کردند خیلی هارا ذکر کردند فرمودند که ظهور دجال ظهور دجال یکی از علائم قیامت هست که خداوند به او چنان قدرت استدراجی داده و قدرت خارقلاده داده که بر تمام اهل حق غلبه پیدا می کند و اهل باطل دنبالش میکنند حزبش گروهش لشکرش زیاد میشه مسلمانان روز بروز کمتر میشن جمع میشن بلاد اسلامی را مسخر میکنه تا حرمین شریفین فقط حرمین شریفین برای مسلمانان میمانند و بعد نزول عیسی عیسی علیه و السلام نزول میکنه و عیسی علیه السلام جهاد را از حرمین شریفین آغاز میکنه دجال را دنبال میکنه تعقیبش میکنه در مقام لد که یکی از مقامات از بسیاری از علما شارحین حدیث نوشتن که درباره لد تحقیق کردیم فرودگاه اورشلیم در لد هست در همون محلی که آن حضرت یادآوری کرد معلوم میشه که تا اینجا تعقیب میشه و کشته میشه به وسیله عیسی علیه الصلاۃ والسلام و بعد از آن عیسی علیه الصلاۃ ادامه میده عرض کنم بر مسلمانان حکومت میکنه تا چهل سال بعدن خلفای عیسی هستند کسانی که جانشین عیسی هستند بعدن همه دنیا را عدل و عدالت و ایمان و عمل صالح در بر میگیره دوباره بعد از اینکه این صلح ها از بین دوباره کفر کم کم میاد کم کم میاد تا اینکه مسلمانان روز بروز ضعیف تر میشن کفار بیشتر میشن قوی تر میشن تا اینکه بالاخره یک روزی أهل ایمان همه از بین می روند. یک نسیم ملاعی می وزد و این نسیم مثل یک دستمال ابریشمیه. عرض کنم که ارواح اهل ایمان را میگیره اهل ایمان فوت می کنند فقط کفار میمانند بعد از اون خورشید از مغرب طلوع می کند دابته هم همین زمان ظهور میکند خورشید از مغرب طلوع میکند دیگه در توبه بسته میشه بعد از اون خدای عزوجل مدتی بعد که خدا بهتر میدونه قیامت را برپا می کند اینها علائم قریبه قیامت هستند که با قیامت نزدیک هستند لذا الله اینجا میفرماید اینها منتظر چی هستند منتظر قیامت هستند که نابغهام بیاد فقد جاء اشاراتها علائمش نشاناتش آمد فانا لهم اذا جاءتهم ذكراهم یعنی نیاد قیامت برای اونها چی منفعت داره وقتی قیامت بیاد یعنی اون وقت قیامت را یاد میکنه بی وقتی بیاد وقتی بیت فایده نداره توبه قبول نمیشه فانا لهم این فانا لهم خبر مقدم هست ازا جاعت هم جمله معترضه هست هم یعنی ذکر اون قیامت فانا لهم چه دردی برای اونها درمان میکنه دوام میکنه لذا قیامت نزدیکه قبل از اینکه که اون قیامت بیاید توبه بکنند بعد از اینکه که الله عزوجل بیان فرمود هم احوال أهل تقوى وأهل إيمان و أهل, أهل كفاره بعد ذي الله تعالى دعوت مِذه هم دعوة وترغيب هس هم دليل جهاد في سبيل الله الله ميفرمَد فعلم أنه لا إله إلا الله بدان هم أنا شأن إنس أنه إن زمير الشأنس لا اله الا الله هیچ معبودی لایق پرستش نیست به الله اینم دلیل جهاد لا اله الا الله توحید است وستغفر لذنبك اینجا خداوند تعالی خطاب رسول الله را بیان فرموده من مراد امت هست همه ما هستیم سه حال بیان شده یک حالت مع الله دو حالت مع نفس سه حالت با بقیه مؤمنین با الله این عقیده و باور را باش لا اله الا الله خالد و مع النفس واستغفر لذنبك برای گناهانت از خدا معافی بخا مغفرت بخا قبلا گفتم مساله عصمت انبیا را عرض کردم و گفتم که استغفار برای ما از کنن باعث بخشش گناهان میشه اما برای پیغمبر و پیغمبران استغفار چون که اونا گناه ندارن باعث رفع درجات میشه و همچنین استغفار از اون زلات زلات و لغزشاتی که اونا فی الواقع گناه نیستند چه بسا خلاف هستند. هم برای خودشت زنبت یعنی زنب سوریت زلاتت و چنین برای مؤمنین و مؤمنات والله يعلم و متقلبكم ومثواكم خداوند می‌داند متقلب و مسوا شما را متقلب و مسوا را چندین تفسیر کردند یکی دو تا خدمت شما عرض میکنم متقلب اولا به معنای جای گشت و گذار کجا گردید کجا می‌رید کجا می‌آیید مسوا میگویند جای آرامش جای قرار لذا متقلبکم تفسیرش اینه جای گشتن شما در روز کجا هستید و مسواکم جای قرار شما در شب را می داند. یعنی خدا از شب و روز شما خبر دارد و بعضی گفتم متقلبکم فی الدنیا مسواکم فی القبر یا فی الاخره خداوند در دنیا که کجا میری چه میکنی چه کس میکنی چه حاصل میکنی اینو هم میدونه و مثواكم و در آخرت جایگاه شماره یا در قبر جای شماره هم الله میداند و یقول الذین آمنو از کردم بخش اول سوره تا هست و یقول الذین آمنو از این جا به بعد بخش دوم سوره هست و در بخش دوم سوره زجر بر منافقین هست سرزنش بر منافقین هست خب منافقین بعضی میگن و یقول الذین آمنوا مراد از این مؤمنین واقعی هستند یعنی مسلمانان گفتند که ای پیامبر این همه شکنجه شدیم این همه اذیت شدیم دشمنان ما را ازیت و آزار رساندن اکنون که به مدینه طیب آمدیم چرا خداوند مند آیه نازل نمی فرماید سوره نازل نمی فرماید که در اون آیه و در اون سوره به ما دستور چی بدهد؟ دستور جهاد تا ما با دشمنانش به جنگیم تغازه متره کردند؟ مسلمانان اما وقتی که خداوند دستور جهاد داد، این مسلمانانی که تقاضا را مطرح کرده بودند، اینها که حق جهاد را ادا کردند، اما منافقان جاخالی دادند، منافقان بزدلی نشان دادند، ترسیدند، لذا زجر بر اون منافقان است، این کسانی که مطرح کردن بر اینها زجر نیست، سرزنیش نیست، عموما مفسران این را میفرما اما الشیخ رحمه الله میفرما منظور است و یقول الذين امنوا منافقان هستند کسانی که آمنو باللسان با زبان ایمان آوردند یعنی خواسته هم خواسته منافقان بود مؤمنین مطرح نکردند منافقان میخواستند که به اسطلاح پوز بدن که ما میجنگیم گفتن چرا خدا سورهی نازل نمیکنه وقتی خدا سوره را نازل کرد همین سوره محمد نازل شد سوره توبه نازل شد وقتی که سوره نازل شد جا خالی دادند اغب نشینی کردند لذا زجر بر اونها است و یقول الذين آمنوا میگوین کسانی که ایمان آوردند لولا نزلت سوره چرا نازل نشد ای اون سوره‌ای که ما می‌خاهم، فاذا فا آن زلت محکمه زمانی که نازل میشه، نازل شد سوره‌ی محکمه، محکمه یعنی چه؟ ببینی آیات محکم، اون آیاتی را گفته میشن که قابل نسخ نیستند، قابل نسخ منسوخ نمیشه، اون حکم از بین نمیره. پس جهاد یکی از احکامی هست که تا قیامت هست منسوخ نشده الجهاد و مازن الیوم قیامه شیر نازل نمیشه سوری که غیر منسوخ باشه بعضی گفتم محکمه یعنی اونی که واضح البیان باشد منه آیات محکمات آیاتی که مرادشون خوب واضح روشنه چرا از چنان سوره روشنی نازل نمیشه که وزکره فیه القتال ذکر بشه در آن جهاد ذکر بشه. این خواستره مطرح کردند و گفتند خداوند هم نازل کرد. وقتی نازل کرد رأیت الذین فی قلوبهم مرض میبینی کسانی را که در دلش هم مرض است یعنی بیماری نفاق است. مریضی نفاق است ينظرون اليك النظر عليه من الموت انها به وقت دستور جهاد بسوی شما نگاه میکنن مثل نگاه کردن اون کسی که مغشی عليه است مغشی عليه یعنی اون کسی که بر او غشیان تاری شده اون کسی که بر او بیهوشی کاری شده مغشی عليه من الموت چنان نگاه میکنه چرا چون از مرگ میترسه از خوف موت خداوند با این بزدلی می کند فأولا لهم فأولا لهم آنها را نفرین میکند فا اولا لهم فا اولا لهم یعنی اهلکهم الله خداوند اونها رو بکشه بمیرندین فا اولا لهم هی فی الاصل دعاء علیهم اللہ ماه آلوسی گفته در اصل اولا لهم دعایی هست برالی انها بین ان یرجع امرهم الی الحلاک و المراد و الله اللہ تعالی خدا اینها را حلاک کند اینقدر بزدل اینقدر ترسو که دستور جهاد آمده چشمش کاسه گیر کرده و نمیتونه جای نگاه بکنه چرا این قدر یک مسلمان از مرگ بترسه خو اینا مسلمان نبوده اینا ادعایی مسلمانی کردند. خداوند می‌فرماض اطاعت و قول معروف بجای این اگر اینها طاعت داشتند عبادت یعنی اطاعت می‌کردند از خداوند و سخن نیکو می‌گفتن بهتر بود برای اینها طاعت و قول معروف مبتدا هست خبرش مقدر خیر لهم یا امسل لهم بهتر بود برایشان فإذا فا عزم الأمر الان وقتی که امر قطعی شد امر چی جهاد؟ خداوند دستور داد باید جهاد کنید الان که قطعی شد دستور صادر شد بجای بزدلی، بجای ترس، بجای اقب نشینی با خدا صادق باشند فلو صَدَقُ الله لَكَانَ خَيْرًا اگر اینها با خدا صادق باشند راست باشند این بهتر است برای آنها بجای اینکه ان با خدا هم آنها از کنم در مقابل خدا هم درنگین نشان بدهند فهل عصیتم انت وليتم ان, ان تفسدو في الارض وتقطعوا ارحامكم این استفهام استفامه تقریر است استفهام تقریر میگویند اون استفهامی را که به معنای اثبات باشد یعنی طرف وقتی که استفهام میکند سوال میکند خودش هم میدوند که چی شده مثلا کسی از در میاد شما میگی آمدی خب اون دیگه آمد که شو میبینی او آمدی این استفهام است یعنی واقعا تو آمدی پس خداوند استفام می فرمد فهل عصایتم ان قریب اینطور طور یعنی شما اینطور طور هستید. فهل عصایتم این خطاب به منافقین است. یعنی نزدیک هست، امید هست، احتمالش هست که ان تولیتم که اگر شما متولی امور بشید، اگر شما صاحب حکومت بشید، بجای جهاد شما با این بزدلیتون ان و فی الارض در زمین فساد بکنید و تقطعوا ارحامکم و رحم خودتون رو کنید کنی قطع رحمی بکنید بجا سل یعنی شما که اینقدر بزدل و ترسو هستید اگر کار به دست شما باشد چی اگر امور به شما سپرده بشه اون وقت چی میشه شما که اینقدر می ترسید بنابراین این الله می فرماید این, حکم این یکی از حکمتهای جهاد هم هست که جهاد باید بشه تا این ترس و بزدلی از بین هم لذا کسانی که این گونه جوبن نشان می دهند نفاق نشان می دهند خداون نتیجه منافقین ربیان می فرمد اولائک الذین لعنهم الله این گروه کسانی هستند که الله انها را لعنت نفرین فرموده فأصمهم انها را کر قرار داد خدا ناشنوا قرار داد و اعماء ابصارهم چشمای انها را نابینا کرد چشمی اونها را هم گرفت گوشی اونها را هم گرفت یعنی خداوند حواس را از اونها گرفته نمی بینن نمی شنوند. از بس که اینها می ترسند افلا تدبرون القرآن زجد برای منافقین این منافقین اگر به قرآن فکر می کردند به قرآن می اندیشیدند تدبر می کردند اینها متوجه می شدند آیا تدبر نمی کنند در قرآن؟ ام على قلوب اقفالها يا بر قلب هایشان بر قلب های قفل آن هست قفل یعنی همون مهر مهری که خدا زده ختم الله ولا قلوبم بدلیل امور قوت تدبر ندارند پس مؤمن باید به تدبر بکند ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم باز هم زیده برای همین منافقین ببینید منافقین اول مثل مسلمان پیش آمدند اما بعدن وقتی که دستور جهاد شد عقب نشینی کردند ارتداد یعنی برگشتن به عقب خداوند می ان اِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ همانا کسانی که برگشتن پست سرشون من بعد ما تبین لهم الهدا بعد از اینکه هدایت برایشون واضح شده دین حق و حقیقت قرآن و ایمان و توحید برایشون واضح هست بعد از این وقتی که اغب نشینی کردن الشیطان سول لهم شیطان برای اونها مزین کرده این عقب نشینی را یا اعمالشون روید یعنی بسبب تسویل و تزیین شیطان هست و املا لهم بینیں کسی که حق را میدونت چطور شیطان او را فریب میده و املالهم املالهم یعنی شیطان براش آرزو ایجاد کرتے املالهم شیطان براش آرزو ایجاد کرده چطور آرزو ایجاد کرده؟ تفسیر روح المانی نوشته والمعنا ووعدهم بالبقاء الطویل شیطان وعده داده که شما اگر به جہاد برید میمیری اگر نری تا میمانی شما انشاءالله در سوره آل امران می که منافقین معتقد بودم مرگ در راه جهاد است می شما برید همه می میرید, کشته میشید. شید بعدن خداوند خودشون را در مدینه تا یه بین برد پس شیطان این تصویل را این وسواس را این تزیین را در دلشون ایجاد کرده که اگر به جهاد نریم تا دیر زنده میمانیم، مانیم عمر طولانی میکنیم. در حالی که عمر انسان در تقدیر نوشته زیاد باشه یا کم خیلی ها هستند که جهاد میکنند کنند هر چی که تو جبه ها می جنگن اونا کشته نمی شند ما شاء الله هنوز زندن پیر شدن تمام عمرش تو جهاد گذاشته ولی نمرده بسیاری هستند به جهاد نرفتند خونه در 20 سالگی مردن در 25 سالگی مردن در سی سالگی مردن با تصادفی با سرطانی با غلبی با غندی اصلا بدون اینها پس مرگ وقتی بیا میاد حتما لازم نیست که کسی به جهاد بره بمیره اکثر مردم دنیا جهاد نمی کنند می میرند پس کسانی که حقیقت را میدانند و بعد پشت میدهند. به دلیل چی هست؟ خداوند دلیل رزق می فرماد الشیطان سولا لهم شیطان برای اونها آراسته کرده تزین کرده و املا شیطان برای اونها آرزوی و امیدی به آینده ایجاد کرده چی امیدی به آینده؟ که وعدهم بالبقای التویل شما اگر نرید خیلی عمر می کنی سال میمانی. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنتيعكم في بعض الأمبر إن منافقين شراء دنبال روح شيطاناستان حقيقة إنها واقعية رميدنا أما قلبنا بكفاراستان ذلك بأنهم بسبب إن إنسك قالوا منافقين كفتان بكي كفتان للذين كرهوا گفتم به اون مشرکان، للذین کریهو ما نزل الله اونایی که ما نزل الله را خراب میدانند، ما نزل الله را مکرو میدانن، ناپسند میدارن. کی است مشرکین و کفار، به کفار گفتند. چی گفتند؟ سنو تیع بعض فی ما در بعضی مسائل که کشرایت را مناسب بدونیم، از شما اطاعت میکنیم. حامی شما هستیم پشتیبان شما هستیم والله يعلم اسرارهم خداوند نقشهای مخفیشون را میدوند نقشهای مخفی آنها را میدوند که اینها با کفار چه سری دارند خدا میداند شما مسلمانان نمیدانید اما اینجا خداوند تخویف دنیوی برای اینها بیان میفرماید که هر وقتی که خدا جانهایشون را بگیرد اون وقت دیدنی و تماشایی هستن فکیف اذا توفت هم الملائکه چه وظی خواهن داشت چه حال خواهن داشت چه کیفیتی اذا توفت هم الملائکه زمانی که جانهایشان را, را, را, را ملائکه میگیرند یضربون وجوه هم و ادبارهم هم میزنن چهرهایشان را و پشتشان را ملائکه با خشونت روحشون را قبض می کنند، شلاغ می زنند، پشتشون، چهرهشون، و بیشون میگن گنند، یالله، اخرجو انفسکم، روحت را بده، نفسیت را بده، ذالک بی چرا با اینها این برخورد خشن میشه؟ ذالک بی اتبعوا ما اسخط الله. این به سبب این است که اینها دنبال کردن، پیروی کردن، اون راهی را که اون راه الله را ناراضی می کند، از خط الله اون راهی که اون راه چی را می کنه خدا را ناراضی می کند. و کری رضوانه اینها نپسندیدن رضای پروردگار را. یعنی دنبال رضای خدا نرفتن، رضای خدا را نپسند داشتند. فا اعمالهم، پس خداوند اعمال اونها را چی کرد؟ نابود کرد. اعمال انها را از بین بورد. ام حسب الذين في قلوبهم مرض اللن يخرج الله ادغانهم این باز هم سرزنش هست و زاجر هست برای ارز بخدمت شما منافقین. ارز کردم در این دروکری آخر چون منافقین این را خدمت شما ارز کنم در بقیه سوره ها تدبر بفرمایید هر ای که ذکر جهاد هست بیشتر سوره های مدنی که در اون سوره ها ذکر جهاد هست لابد ذکر منافقی نمتون سوره ها هست چون هر جمعه دماغ اینها بودند نه خود جهاد میکردند نه مجاهدین را میگذاشتند هی در اونها وسوسه اونها را تشویق به ماندن در خانه خدای عز و جل می ام حسب الذين في قلوبهم آیا می کسانی که در دلهایشم مرض هست مرض نفاق مراد هست اللن يخرج الله ادغانهم این خداوند هرگز بیرون نمی کند کینه های اونها را ضغن کینه دل را میگویند. گویند یعنی کینهشون تا عبد تو دل می ماند دلشون نمی ترکد یه روزی بغزشون می ترکد. خداي تعالی اونها را بخشم میآورد. آخر خودشون را نشون میدن. ولو نشاآ ول اگر ما بخاهم تون را نشون میدیم اونها را. ای محمد صلی الله عليه وسلم. ولو نشاآ یا محمد ل اشخاصهم فعرفتهم اعیانا. اگر ما بخاهم بنام به شخص به شما نشان میدیم. اونوقت شما اونها را به عین هی میشناسید اما ما آنها را به شما نشان نمیدهیم و ندادیم علائمشون رو شما بیان میکنیم فلعرفتهم بسیماهم البته شما آنها رو شناختید با سیماشون با علائمشان ولا تعرفنهم فی لحن القول و حتما حتما شما در لحن سخن گفتن نوع سخن گفتن که چقدر چرب زبانند چقدر قسم جلاله میخورند چقدر اظهار محبت میکنند چقدر چاپلوسی میکنند در همه این شما اونها را میشناسید والله يعلم اعمالك این اینجا ترغیب به اخلاص است بقیه که اعمالی دارند موعظه باشند که گرفتار ریا و نفاق نشوند خدا میداند اعمال شما را پس الله عز و در این آیه هم سرزنش فرمود این گروه گروه منافقان را ولنبلونکم اینجا علت حاکمانه جهاد است یا علت حکیمانه جهاد ولنبلونکم حتما حتما ما می آزمائیم شما را با چی می با امور سخت با امور شاقه مثلا جهاد مثلا هجرت، هجرت خیلی سخته ملک را بذار باغت را بذار زمینت را بذار تمام دار و مدارت را بذار خیشاوندان را بذار ترک وطن کن این امر شاقی هست جهاد سخته احکام دیگه سختن لذا خداوند می ما با این امور شاقه و سخت شما را امتحان میکنیم تا که ما مجاهدین را صابرین را ثابت قدمان را مشخص بکنیم معلوم بکنیم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین حتی نعلم اگر معنای صادق بکنیم میشه حتی ما بدانیم مگر خدا نمیدوند علی عزو بالله میدانت خدا بدون امتحان میدوند که کی صادقه کی کاذبه کی مخلصه کی منافقه بس علم به معنی ظهور است حتی نعلم اے حتی نظهره حتی نعلم یعنی چی؟ تا ظاهر بکنیم تا آشکار بکنیم تفسیر خازن نوشته یعنی اِنَّا نَأْمُرُكُمْ بِالْجِحَاد ای مسلمانان ما شما را دستور جهاد میدهیم دهیم حتی یظهر المجاہد حتی مجاهد چی بیشه؟ شخص بیشه وَيَتَبَيِّنْ من يبادر منكم ويصبر عليه من غيره تا اینکه مشخص بشه که چه کسی مبادرت برای جهاد میکنه چه کسی صبر میکنه لذا الله میفرمه به این خاطر ولنبلوفنکم حتما حتما ما امتحان میکنیم شمارا و امور سخت امتحان میکنیم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین حتی که ظاهر بکنیم مشخص بکنیم مجاهدان را شما و صابران را کسانی که صبر دارن صبات قدمی داران و نبلو اخبارکم وما با ازمایم اخبار شما یعنی امتحان بکنیم اخبار شما را و اعمال شما را ان الذینک فاروق و عن سبيل الله حال إن صفات صفات مشركين هست بيان خسارت الدنياوی شون إن الذين كفروا همانا كساني كفر کردند وصدوا عن سبيل الله وبعض داشتن ديگران رأز راه خدا وشاق الرسول ومخالفت کردن با رسول الله من بعد ما تبين لهم الهدا بعد ذنك هدایت براهم روشن شود بعد ذنك الدلائل عقلي ونقلي آم ور مسیر هدایت را مشخص کرد این کسان لن یدر اللہ شیعا ستا عمل ذکر شد این سمار اعمال سگانه است یکی کفرو یکی صدو یکی شاق الرسول کسانی که هم کف می هم جلوی رای خدا می گینن هم رسول لن یدر الله شیعا هرگز هرگز الله به الله ضرر نمی رسانند به خودشون میرسانند و سیحبت اعمالهم ان قریب اعمالشون برباد میشه کدام اعمالشون هرچی که عمل کردن بر علیه اسلام بر علیه رسول الله به هدر میرزایه میشه نتیجه ای از اعمالشون نمیگیرند شما دقت بکنید چقدر مشرکان زحمت کشیدند ابو جهل ابو لهب اوتبا شیبا کار کردند فعالیت کردند لشکر تجهیز کردند پول خرج کردند جلوی رسول الله را بگیرند همه و همه از بین رفت یا نرفت همه مالشون از بین رفت مال حسرتی شد نتوانستن جلوی رسول الله را بگیرند پس وسيحبط اعمالهم یعنی اعمالهم التي عملوها في مشاقه الرسول همه که اونها انجام دادن در مخالفت رسول همه برباد همه ضایع و سیحبتو اعمالهم یا ایوها الذين آمنو اینجا مومنین را خداوند تشجیع می فرماید تشويق مي فرمي برجهاد. يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان أطيع الله وأطيع الرسول الله رأي طاعتك ورسول الله رأي طاعتك ولا تبطلوا أعمالكم أعمالة رباتل نكونيد بمخالفة الرسول والشرك. مثل مشركان شرك نكونيد مثل منافقان برسول الله مخالفات نكونيد. بله، اینا لذین کفره، دوباره بیان حال مشرکین آخر دوباره احوال مشرکین و تقابل، ان لذین کفره و صدّع عن سبیل الله، همانا کسانی ک کفر دند و بازداشت از راه خدا دیگران را، ثمّ مات و هم کفار سفس مردند در حالی که کفار مردن، در حالت کفر مردن، فلن یغفر الله لهم، هرگز هرگز خدا اونها را نمی بخشد. فلن یغفر الله لهم، این نتیجه خسارت ابدی هست. اینا دیگه ارزش بخشش را بخشیده شدن را ندارند. فلا تهینو و تدعو الى السلم و انتم الاعلون. اما خداوند عز و جل می فرماید که شما با این کفار دشمن وقتی که روبرو هستید مواجه هستید ببینید که از خود ضعف نشان ندهید. از خود وحن نشان ندهید. از خود سستی نشان ندهید. فلا تهنو شما وحن و زعف نشان ندهید بزدلی نشان ندهید. و تدعو الی السلم و دعوت به سل ندهید کفار را. در چی صورت و انتم الاعلون این و تدعو اتفس بر لا تهینو یعنی لا تهینو ولا تدعو الى السلم شما ضعیف نشید بسوی صلح دعوت ندهید در حالی که وانتم الاعلون شما چی هستید برتر غالب وقتی که قدرت مال شماست شما شما نسول بکنید نه بکنید نه دیگر البته از این معلوم میشه و انتم العلان که وقتی که شرایط ما شرایط ناجوری هست شرایط نادرستی هست میتونیم مسلحتا دعوت به مذاکره بدیم دعوت به آتش بس بدیم تا اینکه خودمون را تقویت بکنیم علامه ابن کثیر بر این آیه نوشته فاما فا اذا الكفار فيهم قوه و كسره اما زمانی که قدرت مال کفار بود کسرت مال کفار بود ما خیلی اندک بودیم و یقین بود که اونجا از بین می‌ریم بالنسبه الى جميع مسلمین نسبت به حامی مسلمانان کفار اکثریت قاطع بودند وَرَأَ الْإِمَامُ في الْمُعَادَنَةِ وَالْمُعَاهَدَةِ مَسْلَحَةً امام نظرش اين بود كي ان الان مَسْلَحَةً هم باید صل بکنيم هم باید آتشبس بکنيم فلهو ان يفعل ذلك ميتون انکار ربكونه نظرش ونمونش كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة دعوه اله الى و وضع الحرب ان الله در سوره فتح میخونیم که وقتی که رسول الله رفتن به مکه بروند کفار نگذاشتن خونه کفار بود لشکر کفار آمده باش بود از نظر جمعیت اکثریت بود همه شرایط به نفع کفار بود خب اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم چیکار کردن کفار رو دعوت دادن بیا با هم صلح میکنیم پیمانی ایمانی با هم میبندیم. چنان چنانچه رسول الله این کار را کردند. شرایط اگر چنین بود، امام مسلحت میدید، امام مسلمین این کار را بکند. لذا این در صورتی است که و انتم الاعلان، اما اگر برتری مال شما بود، شما صلح نکنید. شما شرایط خودتون را اونجا اعمال بکنید. والله معكم ولن یطرکم اعمالكم. و ال خداوند با شماست و هرگز زایه نمی کنه اعمال شما فعالیت های شما به نتیجه میرسید انما الحیات دنیا لعب و این آیه درباره دنیا است اما این آیه بی ربط با موضوع سوره نیست خداوند اینجا مانع جهاد را ذکر فرموده اون چیزی که مانع جهاد اصلیه این ضرب قبره دنیاست دل بستن به دنیاست، به مال، به سروت لظاف می که این بی بیارزشه چرا؟ اینما الحیات الدنیا لعب و لحو جزی نیست که زندگی دنیا زندگی لعب و لحوی هست بازی چی هست، بیهودگی هست و این تؤمنو و تتقو اگر شما ایمانه واقی ورید اخلاص در ایمان داشته باشید و تتقو اگر شما تقوی داشته باشید یعتکم اجورکم به شما اجر و پاداش شما را آنایت می فرماید ولا لا اموالكم و خداوند از شما تمام مالتون را سوال می کند نمی خواهد خدا که همه دنیایتون را بهش اندک در رای خدا خرچ کنی همه مالت را نده چون خدا می که اگر همه مال را از شما بخواد فیح فکم یعنی در خواستن مبالغه بفرماید بگه هیچ چی تو خونیت نظر همه را بزار اون وقت تبخلو شما چی می کنید؟ بخل می کنید اون وقت حقد سینیت و درونت چی میشه ؟ ظاهر میشه چون مال را خیلی انسان دوست داره ایس الکموهاں اگر سآل کند شما از شما خداوند از شما آن را یعنی مال را فیحفکم فیحفکم یعنی اصرار بورزد مبالغه بفرما بگه هرچی مال است بده تب خلو شما چیکار میکنید؟ بخل میکنید ویخ رجع ادغانکم اون وقت بیرون میکند خدا کینه درونی شما را یا کراحت مخفی شما رایی نه نمیپسندی دیگه اون خود به خود ظاهر میشه میگه نه بنابراین خداوند با توجه به شرائط شما از شما میخواهد شما هم چکار بکنید تن بدهید به فرمان خدا در پایان الله عزوجل باز هم بر منافقان زجر میفرماید که شما وقتی که فرا خانده میشوید شوید بسوی خدا و دستور خدا و جهاد شما بخل میکنید شما می ترسید، شما نه مال خرج میکنید کنید، نه خودتون در حالی که خدا بی نیاز است، خدا به پول شما نیاز ندارد و این را بدونید که اگر شما سستی کنید، شما پشت بدهید به جهاد به راه خدا، خدا من به جای شما قوم دیگری میارد. که اونها مثل شما نہ بود اونها مجاهدان راستینی خواهند بود ها انتم ها اولا خبردار شما اینها شما اینها چون روی سخن با منافقین بود صفات منافقین خواندیم شما اینها ای که تدعون لتنفقو في سبيل الله فرا خواندیم شوی تا کہ خرج کنی در رای خدا فمنکم من يبخل بازی از شما اونهایی هستند که بخل میکنند و من يبخل فا انما یبخلو عن نفس هر کسی بخل بکند اون از خودش بخل میکند یعنی نسبت به خودش بخل میکند چون که کسی که در رای خدا خرج میکند این را برای خودش خرج میکنه زخیر آخرت میشه وقتی که بخل میکند به خودش نمیده برای خودش ذخیره نمیشه والله الغنی و الفقراء هم الله هست و هست غنی هست شما فقیر هستید الله غنی است من کلیشی شما فقیر هستید به کلیشی لذا شما آنچه که میدید برای خود میدید، نباید خدا بس اگه بخو میکنی از خود بخو میکنی و این تتوالو یاستبدل قوم غیرکم این انتباه آخر است یعنی تذکره آخر است و انت اگر شما اعراض کردید شما پشت دادید یستبدل قوما غیركم خداوند شما را تبدیل میکنه قومی غیر از شما یعنی قوم دیگری علاوه از شما میاند و انها قرار میگیرن. چنانچه در کنار رسول الله مهاجرینو انصار قرار گرفتند ثم لا يكونو امثالكم سپس انها نمیباشند مثل شما یعنی مثل شما نمیشند اونها مثل شما بخیل و بزدل نمیشند امثالکم در چی؟ در بخل و در جبن بخیل و بزدل بلکه اونها هم شجا میشند هم سخی میشن چنانچه صحابه اینطور بودند مال را وقتی که خرج میکردن مسابقه در خرج مال بود جان وقتی تقدیم میکردن هر یکی سای میکرد در صف اول او باشد. صدق الله مولانا العظيم